بازه گذشته ما تا آخر اگر من اشتباه نکنیم این ممکنه هست اشتباه بود خوند گویا که تا رفتن یومرس به اسطلاح و آخرشم گویا من اشاره کردم که فردوسی شاعر عارفه و جای این هست شاید انشالله خود بنده این توفیق رو پیدا کنم اگر بشه چی چقدر از این آرزوهای برنیاله دارم یکشم این است که این عرفان فردوسی رو در کتاب شاهنامه ای که ظاهرن همه ای صحبتش راجعه پادشاه ها این رو بیرون بیارم ما همین قدم های اولیم اولی این اولین نخستین انسانه پس که میمیره میگه که برفت و جهان مردری ماند از اون. میگه دنیا رو با خودش نبرد بزرگ موردری مردری و مردریگ، به معنی میراست چیزی که از مرده باز میمونه بهش میگن مردریگ، یا مردریگ برفت و جهان موردی آند از نگر تا چرا نزد او آبروی؟ میگه نگاه کنم او اصلا هیچ کس آبروی در برابر جهان داره همه رو بدون استثنام او علی سینار همون جوری میبره که آدم باید بسته چنم سه دسته و اینو حافظ توی یه غزلی داره که ازال منصوب زورست من را دگر باره از دست برد به, باز، به من باز آورد، می دست برد اونجا میگه که چیکی خواهجو نکن به, به،, به،, به کار دنیا اینهایی که در وقت مرگ عرستو دهد جان تو بیچاره کرد هیچ کنس استثنانیست میگه برفت جهان یه وقتی داستان داستان کرده رو هم اسلام باید دیگم که نا بار نه چپ داشتن برفت و جهان مردی مند از نگر تا که را آبرو جهان فریبنده و گرگرد راه سود بنمود و خود مایه خر تو رو میگه برو دنبال این پروش هم کنی اینو درست کن راه سود و ازنشون ولی مایه که عمر توه در میخوره خودش جهان سر به سر چون پسانست و بست نماند بدونیک بر هیچ فر. و اینجا گفته بودیم نیم سر حوشنگ مثل این که بود پیشدادیان و پیشداد هم حرف من و گفتم که پیشدادیان اسمشون در, در شاهنامه اصلا پیشدادیانی وجود نداره سلسل پیشدادیان و هوشنگ در عوستا به نام هوشنگ پیشداد محروب شده به همین دلیل این پادشهان اساطیری رو بهشون شون میگن پادشهان پیشدادیان و داد به معنی قانونه پیش داد یعنی افلی کسی که قانون گردیش آزگرد کلمه دادگر و نام همینطور طور همین یه قانونگذاره اصلا پوشنگ رو اونجا اولا در این که ما داریم یه قسمتی رو قسمت مربوط به آتش قصه جشن صده و مهار شدن آتشونی هرکار رو به صورت الهاقی آورده و در بعد نهی آورده عرض کنم که اینجا تمامش رو گفته است که در بعض این رو سفا بوده ولی توی مرد نهی آورده در حال بنده قبل از اینکه وارد اون مسئله آتش این حرفا بشیم چون صحبت این است که آتش در طوره اومشنگ کشف شد چه, شده چه شد چه شد جواب این است که اگر نظر علمی ما بطورم درقت بکنیم آتش همیشه روی زمین روی و چیزی نبوده که بشر اکتشاف بکن دلیل این که یا برقی اگر میزد آتش سوزی میشه تو جنگلا آتش سوزی شد که هنوزم داره میشه و واقعا بشر جلوش نمیتونه بگیره عرض کنم که منابع گاز زیرزمینی که بوده میامده بیرون اینا به دلیلی می گرفته و همجور شعله آتش وجود داشته یا آتش پشانی باعث میشده که حریقهای عظیم تولید بکنه تر خشک و هم به سجونه بنابراین آتش چیزی نبوده که بشر باش آشنا نباشند نقصد دوزهایی که کره زمین به وجود آمده آتش هم روش وجود داشته اون چه در اینجا اهمیت داره و باید ما توجه داشته باشیم با اون قسطه ای که هست که به من می میخونم با اینکه که در حاشیه هست این است که میگوید که یه روزی شاه رو جنگ یاش میرفت و مار سیاه درازی جلو اون سر برا و چون اون وقت اصلهه نداشتن حوشنگ یه قدسنگی بردارش رو پرتاب کرد مار مار از ضربه سنگ جان به سلامت و رد ولی سنگ به سنگ دیگه خورد و هر دوتا سنگ در هم شکستند و از برخورد این دوتا سنگ شعله آتشی پدید آمد و به این دردید مکانیسم پیدا کردن شعله آتش از طلاقه دو سنگ یا بعدها از تلاویه سنگ و آهن رو بشر درسته مرسن هم افضا نمی کنه ولی یادمه که مادر من می که در روزگاری که او جوان بوده کبریت و این آسونی که حالا که دیگه الهنگلله چود گاز ما میکنه ای این ولی کبریت و این بسایل آسون و فندک و فندکی گازی رو این نبوده و باید سنگ چهماق با آهن رو می داشتن و بعد پنبه نیم سوخت یا یه نوع چوب بسیار سستی بوده نام قو این رو می داشتن، این سنگ چهماقی که می زدن این جرقه می پریده و خونه توی اون پنبه نیم سوخته. یا توی اون قو و بعد باید فوت میکردن کم کم و دود میکرده و باید یه ما شیزم نازک رو میذاشتن اونجا و آتیش میگه به هر حال آتیش گیروندن تا این اواخر و این که در خانواده های زردوشتی مرسوم قرار است یا اصلاً, اصلا خانواده رو میگن کانون خانواده کانون یعنی اجاق و در هر خانواده باید یه اجاق روشن وجود داشته باشه الان حتی ما هزار سال مسلمان سوزیم بلی کسی که زنی که بچه نداره میگه من اجاقم کوره این معنیش اینه که اگر کسی بچه ندشته باشه کسی نیست که اون آتش خونه با روشن بکنه بعض اینکه مردن اجاق خامس باشه به این دلیگه میگن اجاقم کوره و اصطلاحات بسیار زیاده دیگه برای اجاق کسانی که کسان صحاب کسان کرامت در نام دوتن سید اجاق آزین برا آتش پیش زردوشتی ها مقدس هست و انصار خیلی صاف و پاک هست و انصار تو. اما غیر از اینا یه فایده عملی هم وجود داشته تهیه آتشو آتش رو گیروندن آتش رو کار آسونی نبوده بهتر در هر خانواده یه مدار آتش خوابونده داشته باشه برای اینکه هر وقت خواست آتش بیرفتوزه دیگه گرفتاری نداشته باشه اینا به این دلیل این آتش رو نگه داشت. در هر صورت این قصه ما رو اون بساط نشون میده که در دوران اوشنگ بشر تونست آتش رو ماهار کنه نه اینکه آتش پیدا کنه آتش پیدا بود اتفاقاً آتش چیزیست که هیچ حیوان درونده وحشتناکی نیست که به شدت ازش نترسه شیر و فیبرو برای که نه اگر جنگل یا آتش گرفت، همون تو می و می‌سوزن اصلا راه گریز ندارد این بسیار چیز وحشت پدیده‌ی وحشتناکی بوده و هست هموزم هست، با همین قدرت بشر آتشی که طبیعت بر افروزه، جلوش اصلا نمی‌شه گرفت این آتشی که اینجا موشنگ صحبت می‌کنه، صحبت ماهار کردن آتش که تونستن هر و خواستن آتش روشن بکنن و هر و خواستن آتش خاموش این رو در این دکتر خالدی میگوید که گوهر آتش به چنگ آمد کاملا نشون بگید دبینیم؟ میگه نخستین یکی گوهر آمد به چنگ یعنی آتش در اختیار آدمیزاد ترانید نردو بشید برها از میگه بعد از این چیز شده و بعد بعدم بعد هم رو درست کردم که بعد موشنگشا این رو جشن گیره اسم این جشن رو گشتم جشن صده که در انگیزت جشن آتش افتوزی رو من قسمت الحاقی رو در صفحه بعد میخونم که جز متنی نیست و نمیخوام توضیح مفصل بدم بعد میم از اول کار شروع میکنم در صفحه سبحه سی یه 21 دو به 21 به بیت هست که این میگه که نگفتارند در نهادن جشن صده از اون بیت های الهاوی میگه که یکی روز شاه جهان پیش کوه گذر کرد با چند کس همگروب حدید آمد از دور چیزی دراز سیه رنگ و تیگتن و تیزتاز دو چشم از بر سر و دو چشمه خون سه دود جهانش جهان تیرگون نگه کرد حوشنگ باهوش و سنگ گرفتش یکی سنگ و شب تیز چند به زور کیانی رهانی دست جهان سوزمار از جهان جود رست برا به سنگ گران سنگ خورد همان و همین سنگ بهش گست خورد فروغی فدید آمد از هر دو سنگ دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ آزرنگ یعنی آزر رنگ دو کلمه وقتی دو کلمه با هم تحکیب میشه که حرف آخر کلمه اول و حرف اول کلمه دو یکی باشه یکیش هست میشه. آزر میشه آزرنگ میشه آذرنگ دوست تر میشه دوست تر یه دوتاش نمید این قایده است در تام زقنه هندوهروپایی همست دل سنگ گشت از فروغ آزرنگ نشد مار کشکه ولی کنز راز از آن طبق سنگ آتش آمد هر هران کس که بر سنگ آهن زدی از او روشنایی پدید آدی کاملا روشنه که آتش تحت اختیار بشر به دستان جهاندار پیش جهان آفرین نیایش همی کرد دخاند آفرین که او را فروبی چنین هدیه داد همین آتش آن را قبله نهاد بگفتا فروبی این ایزدی پرستی باید اگر بخردی شب آمد رو آتش چکو همان شاه در گرد او با گروه یکی جشن کرد شب و خرد صده نام آن جشن فرکنده کرد سهوشنگ ماندین سده یادگار بسی باب چون دیگر ها کردن جهان شاعت کرد جهانی به نیکی از او یک نقطه کوچه که دیگرم هم در جشن سده بگم جشن صده 50 روز اونده آخر سال درست حال کلمه نده دلیل اینه است که سعدی هم سعدی است. استرسرو بعضی‌ها به این دلیل است که 150 روز و 50 شب از سر سودم سعد درست است. اصل ساده عبارت از این است که در ایران قدیم دو فصل برای سال قائل بودن. یکی تابستان بزرگ، یکی زمستان بزرگ. تابستان بزرگ از اول فايرگرديم شروع می شد. آخر میک. از اول آبان ماه. آبان آبانه دیگه. یعنی ماهی که آب از آسمان میاد. آبان. یعنی ماه از یزدی بار. از اول آبان تا آخر اسفند پنج ماه زمستان بزرگ پس تابستان بزرگ میشه دی ده روز زمستان بزرگ میشه صد و پنجاه روز صد روز که از زمستان بزرگ میگذشت جشن صدی بگذرد روز مدرد آخر زمستان یعنی این حساب صد رو باید از اول شروع نه از آخر ما درست و همین جشن صد این هست بعد میگن که آتش میان تشریفات مفصلی هم داشته این کار و آخرین جشن رو تا اونجایی که ما مدارک تاریخی در اختیار داریم در تاریخ بینوی میگوید که در دوره سلطان مسعود غزنوی در حدود سال بین 421 تا 431 بادشایی میکرده هجری قمری یه جشن صده گرفتن که بیاندی شرحش در تاریخ خودش آورد. حال جشن صده منصوب بعد خواهیم دید در چیز که نوروز هم منصوب جمشیره و مهرگان منصوب فریدونه. آه. از زنستان بزرگ. یعنی از اول آفان. زنستان بزرگ هفت ماه، تابستان بزرگ زمستان بزرگ پنج ما تابستان بزرگ تام صد خیلی تازه است بعد از بعد از اختیار الفای عربی وارد زبانش م شده بنابراین شما هر جستد و خطو دستورای می زدرالدین که دوره دانش آموزی بنده تو دوستان و بیرستون می خوندن چند تا چیز رو نوشتون، و شهست میتونید که به ساعت بینیمسید، یا بسیم بینیمسید یا قلطیدن و تفیدن میکنید، با تا بینیمسید، یا با تا, یا با تا کلمات پارسی البته اینکه چرا شده دیگه بحث فنی نه بحث فنی خیلی درازی است الان اینجا ما نمیتونیم بکنیم پر بی خودی هم نبوده همین. مثلا چطور شده که تهران ر را تبرستانو با تا مینوشتن ولی هیچ وقت نگاش تبریز و با تا اگه حساب نداشته و فقط عربی ما آبی بوده خب تبریز با تا هیچ وقت نه بنابراین تلفظ این دو تا ت حتماً این مال من نیست اینو مرحوم استاد من مرحوم استاد جلال همایی میپروندم یه روزی اینکه که همینجوری فکر کنیم که نه آو آینا چیز بودن و خر بودن و بعد عرب ماها بودن و بعد بشه اینجوری کردن اینا این درست نیست، ساده کردن و ساده نگلی کاره و اینکه که بگیم که چه از ما دیدیم ایش این حرف ای مفته بودن، بزرگان بودن، آزم بودن، کسایی بودن، دقت میکردن در مسائل که گاهی آدم حیرت میکنه همینجوری نمیشه بودن. به خصوص که گاهی این قبیل مسائل پیش میاد که آدم میبینه خب یکی هست اون یکی نیست اینکه جای, جای بحث واقی نمیزده که لابدی یه چیزی بی خودی هر حال. اما راجع به هوشنگ بعضی ها گفتن که هوشنگ مراکب است از هوش و هنگ اونم به معنی قرد و دانشو از این حرفات که در کلیمه فرهنگ هست این درست نیست یعنی این اشتقاق و عوامانه من الان یادم نیست یه وقت مطالعه کرده بودم بر باقی این کلمه دوشنگ چیه ولی الان به خاطرم نیست و حالا با عزیزه تبلیغم از خودم بکنم یه هشت تا نوار ما در تفسیر اتفاقا همین بخش، این بخشها بخشهای دیگره شاهنامه تردوسی حاضر کردیم که در در میاد در این چند روزه و امیم در همین چند روز در بیاد اونجا محنی حوشنگینا رو دادیم هرکی باتر ولی تا جایی که یادمه مثل اینکه که حوشنگه این کسی که برای مردم خانه های خانه مناسب تایید کنه اگر اشتباه نکنم حالا چون تقید دقیق یادم نیست توی این کشار نمیده ولی به هر حال برای این نوارا چیز میشه و خیلی رو میخواد مجالاک که وردی واسه خودم تبدیل واقعا کنم که اشتا نواری روشم آقای زمان زمانی نقاشی کردن چه خیلی از یک ماه دیگه برای ماه سلی؟ سلی؟ خود؟ نه میدونی من میارم اینجا خودمون میاری اینجا بیوتی مناسبی هم فقط برای پولش تا بیاد برای کارایی دیگی که دردیش هنجا افتونار برای هشت آمان خیلی بله اعز کنم که میگه جهاندار بودشن که با را و جاد به جاد تاج بسته هم بینیم تاج وجود بودشن همچونکه اعزگره هم حاج وجود داشتی و اون مسلس هم گفتم که نفر گروه با معمولا هست بیشه بات ها این اتفاق خودتی اینا رو گفتم خادشای هم چهل سال بیشتر نبوده بگشت از برش چهر سال چهل پر از بوچ مغز و کور از دار دل چو بینچه بر جای راه نهی چنین گفت. که بر هفت کشور منم پادشاد برجا هر جا سرفراز و فرماندوا به فرمان یزدان تیروزگر به داد و دهش تنگ بستش جمعه. یه ضمیر داریم که ما تو ترون خیلی بکاریم ولی میگیم رفتش گفتش این کار کردش مثلا جارو دیدش ضمیر فاعلی در آثار ادبی بیشتر زمیر محبولی هست وقتی میگه دیدش یعنی او را دید یا گفتش یعنی به او گفت و من بودم در بچگی که قومخوار اصفهانی داشتیم می اومدن ادای ترمیایی که می‌خواستن در بیارن میگفتن که رفتش گفتش از اینو اواین اینکه این چیزه غلطه بعد ها دیدیم که نه در که قدیم، در روزگار قدیم در اغلب کتاب ها زمینش این هم آمده و استعمال ادبی داشته دوبی سرامین میگه که ندادش پاسخ و با من برا شد چنین گفت و چنین گفت و چنین گفت ندادش پاسخ، این نداد پاسخ به دام دو دهش تنگ بستش کمت، این کمش بست دمروز این میشه بالا خیلی توضیح ندارم چی بیدم عرصم که عدد هفت عدد خیلی مقدسی هست خیلی خیلی و قدیم تقسیم اینکه حالا به پنج منطقه یا پنج قاره تقسیم می کنند دنیا رو به هفت اقلیم تقسیم می به تناساب کشورهای و زندگی و زی همگاه که طبیعی اقلیمای وسطی اغلیمای معتدله بودن و اختلاف زیادی هم که نداشتن از دنیای قدیم هم اطلاع نداشتن اگر هم من الان هفت اغلیمو نمیگم اغلیم اول کدوم از دوم کدوم دلیلش این است که تو کتاب‌های مختلف این اقلیما رو با هم فرق می‌ذارن و تو یه کتاب ممکن یه چیزی بنویسه تو یه کتاب یه علتش اینه که هر کسی معنیشو خودش تو مرکز دنیا و فکر کنم اونجا دیگه بهترین جای دنیا این این بدهیست و هیچ کاملا تدمیه بشره بنابراین این از همونجا شروع می‌کنن به اینکه باقی دنیا رو تقسیم کنیم اینجاها و کجاست و ایران و انیران ایران و جز ایران جز ایران یکی بود همه؟ مرخص ایران از ایران. این است که هفت کشور که می‌گهند سراسر جهان و به تناسق اون به کشور اول یا هفته اینا دور افتاده ترین قسمت ها بودن سه بوم و نزدیک هم بوده. و مراد هست ایلین البته در اوستا هم از قدیم ترین ازبار این تقسیمات وجود داشته و در عویستا هم هست و حتی تقسیمات در همین قصه فیلون تقسیم می این در سر بطور و برچیز می کنه اینا اونجا هم از این ایلین ها و تقسیمات است وزان پس میبینید که اون روش یه بابو ذمه گولیشت میشه او اوزان پس تا هنوزم در اصفهان این مرسومه میگن که مثلا فلان کس جوون است او خوشگله او معلومه فلان است این او حرف عطر فارسی او اپرو بادو مهو خرشیدو فلک در کار اگه بخونی عبر و باد و ماه و خرشید و فلک ای نسوش این نسوششه این هر شد از واوی که در فارسی میسیم تلفظ فارسیش اوز در پهلوی هم اوز اما در عربی همین علامت هست با فته و تلفظ میشه وا با عربی هم مثل دوبلیوی فارسی تلفظ مثل ما تلفز با ما تلفظ نمیشه وا و وقتی که عربی گازی شده اون هر پای عطفی که اول شعر قرار گرفته و خوندند و پس جهان یکسر آباد کرد. ولی در هایگرات خیلی راحت میتونیم بخونیم او، پاس و این که اینجا علامت بذاشته یعنی ایراق بذاشته روش نشونیم در نصفه قصدی خودش همینجوری اینه میشده به اعتمال قبیل در روزگاه خونده اوزان اوزان پاس جهان یک سراب کرد همه روی گیتی پر از دار نخستین یکی گوهر آب گوهر اسطلاح علمیش، اصطلاح فلسفه است همون است که معردش میشه جوهر، گوهر و جوهر در مقابل عرض از میگن که جوهر یا گوهر چیزی است که به الاستقلال خودش موجود ماستقلی جزایرنش که هر یک اینا سان موجود چاچ آرز اینکه خودش نمیتونه وجود داشته باشه مثل سفیدی شما چیزی نمیتونید بیرون بیرون بگی این سفیدی سفیدی یا با دو بشه، یا دو بستنی بشه، یا رو نستندگی بشه کنید، یعنی وجودش بستهیی داره هوش اون چه در فارسیش میگن اسم معنی، این ها که وجود نداره بیرون بگید این علاماتش علامتش در یه آدمی هست میگید این موشمند. اون با معتقد بودن فلسفه‌ی قدیم همه‌شون هم خبر دارید البته هیچ چیز تازه نیست که عالم عالم مادی از چهار گوهر درست شده آب و آتش و باد و خاک و تمام سایر چیزهایی که در دنیا هست اجم از معدنیات و نباتات و حیوانات اینا از ترکیب اون چهار گوهر عظم نیست بگم که سالهای سال، چهار 400 سال از دوره رونیسان رو که این نظریه باطل شدید، یه حرفی نیست و الان هم اگه حرف می به دلیل این است که گاهی برای فهم شهر اینا لازم این که اون نظریه رو بدونیم، اگه ندونیم نمی و گوهار فرق در فلسطه به چه اطلاف میشه؟ چشم، عظیم، اون قدر دقیق تره الوقته، به این جز الای تجازه است، این اطلاف و حالا اطوان باز غیر از این اطوان می‌دهد چاله می‌گهد، چشم، حالا هرز بگهد از کنم که این که یک گوهر به چنگ آمد برای اینکه اون سه دیگر در چنگ بود با دیاری می‌زدن آب کرد خاک برمی‌می‌شتیم بادم با که بود ما آتش در اختیارشون می‌نزد اینو به اختیار نخستین یکی هر آمد آره این چهار عنصر فاک از همه سنگینتره خاصیتش سردی و خشکیست خاصیت خاک سرد و خشک آب خاصیتش سرد و تر از وزر سبوکی بعد از کاج قرار داره و قبل از اون دو تایی داره از هواست گرم است تر چهارمی آتش که گرم است آتش رو با این علوی که ما میکنیم توی چیز آتش یه فلسفی اون چهار انصار رو با این آتش که ما میکنیم به شعلی میزنه با حایثی نفر اون آتش رو افضل دین پاشنی تو رساله ها شهر میگه یک کره است بر از کره هوا یعنی نه به ترتیب در مرکز همه کره خاکه روش کره آب، روش کره هواست، روش کره آتش که میگن اسیر یا اتفاق. میگویم که این رنگ ندارد. فوغال آدم لاتیک و به فاصله از لحظه کشفات و از لحظه ازت بعد از اجرام فلکی، اجرام فلکی از او لطیفتر ولی میونه این چهارانسار از همه لطیفتر اوست و هم دل ما هست میگه فوق الادم گرمه ولی ما اون گرمی نمیبینیم از کجا میدونیم گرمه؟ این شاهابای ساغلی که میاد که حالا ما میتونیم که میدونیم ذرات ریت ها و سنگ های سرگردونی تو در فضا هستن وقتی پرخورد میتونن به زمین زمینم که مشاله این ساکنی نیست که ما داریم نگاه میکنیم ثانیه 19 کیلومتر ران، ثانیه 19 کلومتر که یه سنگی که در هوا سرگردونه حتی برخورد میکنه به زمین این با ثانیه 19 کلومتر سرعت رد بشه در مزید استقاع که فوقلاده با هوا این این داغ میشه و میسوزه و اوسیده میشه و میسوزه تاهاییم شعله نمیشه خیلی شدید و اینا یه قسمتی میمونه که به صورت آسمان سنگ میفته زمین که اکثرا این آسمان سنگ‌ها آهن هست. به هر حال بابا اصل میگه که علت اینکه میدونیم این خیلی گرمه این است که به محض اینکه یه چیزی شهاوی چیزی میاد از کره آتش گذر میکنه میسوزه. بنابراین مسلمه هست که این کره آتش گرمه بعد یه این آتشی که ما در زمین درست میکنیم میل به غلوف داره میل به غلوف داره و این روبه اون حیز خودش میده برای اینکه نظر فلسفی میگوین که هر کدوم از اینا یه حیز دارن حیز واقعی جیمی و زه به معنی مکانه تا علت اینکه من کلمه رو کار ببرم برای اینکه اصطلاح فلسفی است و هست و بگم مکان بعد حیز برنی نمیکن. میگن یه حیز دارن و این حیز وضعی به طبیعتشون تحییم شد یعنی خاک در مرکز رو میگیره و میگه از همین سنگی به حیزش مرکز و میگه اگر شما بخوایی یه قسمتی از این خاک و سنگ رو از مغر خودش دور کنید باید حرکت قهری بهش بیر یعنی به زور برش دیدارید بالا و تاییره ببرید باید ما نیروی دست میاندیسیم تا وقتی که این حرکت قهری یا حرکت قصری قصره و یعنی همون قهری هست این به خلاف حیز خودش حرکت بارید. به محض این که اون حرکت خونسا شد بر میگرد به حیز خودش سنگ وقت رفت بالا به محض این که اون نیرو وارد شد بر میگرد, میگرد مرکز خودش البته باز ما حالا میدونیم که هلتی و. دار درست نیست بعد میگه دلیل این این حیز درسته اینه که اگه میداری هوا را شما باید زور ببرید زیر آب تا کنید کرید بهت بالا میدرد به حیز به این دلیل میگه که هر کدوم از این اجرام میل طبیعی دارن و به حرکت طبیعی و حرکت طبیعی سمت حیز خودشون کشیده میشه و اگه بخوام اینا حیز ختم رو کنیم باید با حرکت قسی با حرکت قاهری نروین هوا رو میخواد زیر آب ببرید به زور باید ببری سنگ هم میخواد رو هوا ببری به زور باشه علاوه بر اینم یه دلیل ماسکی هم میره اول الدین کاشانی میگه این چهار عنصر همه به هم چسبیدن و وسطشون خلأ وجود نداره یعنی خاک بلافاصله با آب داشته شده روی آب هم هوا چسبیده به اون و همینطور آتش بعد می دلیلش اینه شما یه لوله رو بکنین این کار رو که این تجربه که در این بیکان رو زیاد میکنن یه لوله بکنین تو آب رو بخواید بکشید با بالا شما هوا می میکشید بالا بینید آب باش میاد بالا پس معلوم میشه که این هوا و اون آب چسبیده نمیشه جدا باشه به حال اینکه باز میدارین این نتیجه فشار عواس و علت دیگری این ترتیب ثابت میکردند که وقتی شما یه لولر هوا رو توش میکشید بالا آب هم دنبالش میاد بالا این نشونید که خلق وجود نداره و این،, این گوهرها همه به هم چست کنید دوره کلی گوهره عرض که عرض کردم عرض عبارت هست است که وجودش قائمه به ذات خودش نیست مثل سکیرگی، مثل سیاهی، مثل شیرینی شیرین بودن تمام به آور بیم کان یا شیلی می یا شیلی یا نه خود خودشیلی وجود نداره که مجاز است اما جوهر فرد بالاخره فلسفه در اینجا می‌رسیدن که جسم رو میشه تقسیم, تقسیم, تقسیم کرد و تقسیم کرد و تقسیم کرد و تقسیم کرد و تقسیم کرد تا به جایی می‌رسیم که دیگه این دونست نمیشه یعنی یه جز این که دیگه قابل تقسیم به جز دیگری نیست که اینو بهش میگن جز لایت اجزا یعنی جز این که دیگه به اجزا تقسیم نمیشه البته این تقسیم ذهنی و فکر چیست تقسیم عملی در عمل نیست فرانه که اون جز این که ار عمل ما خیار میکنیم اون مثلا صد تومال کلو همچه از دیده است. عرض کنم که این تحصیم فکر می گفتم جزم به جایی که جز است که دیگه قابل تحصیم جز نیست و روش شکن جوهر فرد یا جز لایه تجزیز کنم بلوطه ادهی محالف بودن با اینجز. یه دسته از علمات یه دسته از فلاسفه مواخره این کار بودن که بهشون گفتن اطومیست کنم یعنی معتقدان به اتم که می گفتن از اجزا لایه تجزیزا و جایت این جوهر فرد خیلی شهرت پیدا کرده در شعر حافظه بعد از این نمه و در جوهر فرد که دهان تو برای این نکته خوش استداده این دهان تو از بس کوچکی جزء لایت جزداز یه تقسیم پذیر میدید نخستین یکی گوهر آمد به چنگ به آتش آهن جدا کرد سن. اینجا من یک نکته دیگر رو براتون بگم که احیاناً براتون جالب باشه شاید هم اشاره کرده باشم یا نکرده باشم نمیتونم بشر خیلی پیشتر از اون که آهن رو استخراج کنه به آهن دست بود علیلش این است که آسمان سنگ ها تقریبا هاشون از آهن خالص خالص یعنی آهن 100 درصد خالص و کاپیتل شما برین من در لندن دیدم شاید جاهایی که هم حتما هست تو موزه های علوم طبیعی که برید همه نمونه های نازمان اسمن سنگا رو دارن تو موزه علوم طبیعی لندن من رفت بودم. یه آسمان سنگی داشتم انقدر بعد اینو از وسط اره زدن بریده بودم دو تا قاب این طرف دوست آهان این آسمان وسطش مغزش ها ناهیه که بیش از همه میریخت روی زمین در خاک ترکیگی فعلی در کشور لیدیای ها یه قدیمه اونجاها پیجا میکردم میرفتم و اینا پیدا و از اینا سلاح بسطن. و قصه انترتفن شداد عبسی قصه انتر که انتر فهلوان هماسی عربه درست مثل رستم ما مثل یک چنین چیزی هست اونجا حالا داستانی هم میگه که من داستان نمیخوام میگم یه شمشیری که انتر داشت از آسمان سنگ اینه از آسمان میدونید که گفتن که زلفقار علی ابن عبی طالب هم از آسمان سنگیس و هم گفتن که تبر ابو مسلم از زلفقار علی تکیش آهن او تکیش و این خیلی عجب نیست یعنی اینو مردم فقط افثانه هم, هم گفتن در قرآن کریم هست که و انزل نلحدید و فرو فرستادین آهن را و انزل نلحدید فیه بأسون شدید و مناخ علمات گروه فرستاد آهن را که در او بیم شدید هست منافعی هم برای ما هست و در قرآن یک سوره هست اونا سوره حدید سوره آهن حواست رسیار زیادی دیگه, دیگه هم آهن داره که من اینجا نمی کنم بحث کنم یکیش خاصیت زدجادی شد که متعرض دارند که آهن با درست به این دلیل که جرم آسمانی جادو رو باطل میکنه و زهاد زها بود چون که میدونید و در برابر کاوه پیش‌کانتونیس بگه. طاووس آهنگر و آهنگر آهن خیلی در میتولوژی در افسانه ها تاثیر داشته. در هفتان اسفندیار میگه اون زن جادوور یه زنجیر آهنی زردهشت از بهشت آورده بود به بازوی اسفندیار بسته بود به این دلیل زن جادو هرچی جادو کرد جادوست در اسفندیار ها رو درستی کن استنگی کار نداره. اینه که این که میگه تیره به آتش از آهن جدا کرد سنگ این قبل از اینکه که به آتش سنگ از آهن جدا بشه قبلا با به آهن درستی آت آهن یه نکته نکته دیگر این است که ما امروز واقعا یه چیزایی رو نمیدونی و یه مسائل رو نمی الان مثلا دوز صنایه خیلی پیش شرطه فولادرزی و پولاتجوزی یعنی استیل می سازن آهان زنگ نظر و این لابراتوار دارن مسائل دقیق دارن بعد حرارت های پوره رو در درجه می بالا بیارن پایین بیارن درست؟ در هم در شهر دهلی یک منار بلندی هست که ارتفاعش تقریباً نسته ارتفاع برجیل فله منطقه 600 سال قبل از برجیل فل ساخته شده ناما گتوب بنار گتوب یعنی همون قطب قادچای بوده ناما گتوبتین تغلق این دستور داده این منار رو ساختن نمیست گلدسته های ما هست منطقه پاینش پهنه خیلی خیلی پاینش پهنه گلدسته یه چیجه تو پاینش پهنه میره بالا گتوب منار. پهلوی این، یه ستون آهنی توپر مرزداره ستونی که مثلا بنده اگه بخوام بیاد اونجا از پشت این ستونو بغل کنم، دست هم نمیده یک دستون, دستون نمید. و این ستون دقیقاً دو متر دو متر و بیست قد آهنه و اونجا میگویند که اگر کسی بتونه دستشو از پشت این ستون دست دستشو هم برسونه هر میگرد که بخونه به خواهد داده این دوستان است که حرارت زیاد رطوبت هم زیاد این گرمخونه همون سره تو گرمخونه هموای ایرون یا همچیده ماشین بینز میاد اونجا سال دوبام تمام این گرگی رو آهن بعدنش دراخت دراختش از پشت درنگ میزنید رنگی روش هم میخورد هفتصد سال این ستون اونجا هست زیر اون بارونای سیلاسا، زیر اون حرارت، زیر اون رطوبت، سر سوزنی زنگ نزده اصلا معلوم نیست در اون که سوخ تهن و تاپاله بوده بود حد اکثر چوب بوده هنو زغالسنگ سنگ نمیشناختن اینا چطوری این همه آهن رو کردند کردن و قالب ریختن و یه استوبانه به این چیزی به اون بزرگی با چه وسایلی آهن رو به غالب واقعا ریختن بعد چشون بلند کردن چشون بلنده کتا کردن چون همه جرسرگیل هست نبوده با تمام این احوال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 با اون عظمت، با اون وسائل اون روز این بچه چون این بلنده که تاریزه نمیتونستم بکنم نمیتونستم بدن بعد این گداخته بوده این اصلا اصلا ما امروز نمیتونیم کنیم بکنم کنم ولی ساختن هست بل، غرزم اینه که مسئله آهن و صناعی آهن کارینا خیلی خیلی خیلی خیلی بدن. نحسنی نیفی گوهر آمد به چنگ و آهن ز آتش و آتش ز آهن جدا کرد سنگ سر مایه کرد آهن آبگون که از سنگ خار آتش نگست که آهن آبگون یعنی آهن مزاب که از سنگ, از سنگ آهن دیونیش دیش و ممکنه این آبگون رو معنی سیغلی هم گرفت. برای که در عدب فارسی شمشیر و خنجر خیلی تیز رو گفتن مثل قطره آب. یه کشید چون قطره آب از صفا و سیکلی بیشت سر مایه کرد آهن آقون که از آن سنگ خارا کشیدش برون چون بشناخت آهنگری کشه کرد گراز و تبر اره و تیشه گراز به نظرم به معنی گابا هم من اینجا یک چیزم متسپانه ندیم من نه فرهنگ دارم اینجا نه وسیله دارم هیچ یکی از اینا براقص شده نه وسیله دارم نه،, نه فرهنگ دارم نه میتونم مراجعه کنم ولی یه مزاری از اینا میمونه تو خونه خودم که باشم یه نگاه میکنم و اینجا نمیتونم متسپانه برا فکر میمونم که گابا هم میشه کردنم به معنی ساختنه گراز و تبر، ارده و تیوشه کرده چون این کرده شد تاره آب زید دریا به ها مومشندر به تا دریا یعنی رودخونه هست این روز هم هست در پاکستان الان مثل نگم دریا اصول رودخونه و هنوزم ما در ایران سیحون و جیحون رو میدیم سیر دریا و آمین دریا جهودگرد و وسائل آهنی و ساخت بعد آف رو به صورت نهر جدا کرد از سلطانه و آورد در آمون اینجا باز باید ارز بکنم که کار کشاورزی هم بعضی نیتید جامعه شناسی تا قبل تاریخ و مردم شناسی ناخی میگن مسئله این است که تا یه مدت زیادی یه نوع تفسیم کاری به این افراد وشر شده بوده که مردم میرفتن به شکار کار خطرناکگری بود و زن‌ها می‌رفتن به چماوری میوه‌جات و مواد خوراکی‌های نباتی که چون بچه داشتن، زدگی داشتن، وقت معیانشتن، کار آسمی‌تری بود، خانمان بکردن در زمین این بازی‌ها، یواش یواش به مکانیسم این که تخم رو بریزن و این سبز میشه و گرده دیده بودن، تخم می‌رید تو بایدن، سیاهی‌گر آمد تو داد یا خوارش داد و استفاده کردن این پیول اما مدت های مدید چون کشید و هنوز آثارش در ایران هنوز نمه هست اینها ها فقط دونه رو می و می نشستن تا فریف خدا آبش بده خدا خودش بده این درده هنوز الان شاهدشم این کتاب کتابی کتاب کلیدر محمود دولت آوازی هست میگه ایلاته انطراف خوراسون وقتیس کوچ میکنن یه مشکنده ها میباشن زمین بی برای که هر چی از این نونشون قنیمت دیدید کارشون هشمداری اصفن میدارن میرن ولی اینو میرزن برای اینکه بعد چیز میکنن بعد از باید این هم کاریست که بشر اولیه می کنه یعنی می ریخته یاد گرفته بود یه تقمو، سه تقم، چهار تقم به مصرف می رسنده. ولی به این ترتیب زمین بعدش بیقوت می شده باید دفعه دوم سوم دیگه نم پس نمی کم کم دو کار دیگر رو هم یاد می گیرن ولی این کارا خوب شدن ها دور می شده. یکی برگرد در زمین بوده سخت زد و یکی آب یادیم که که آب بیاد یا نیاد آب رو می آوردن اون که لازم بود در وقت معین به کششون آب اینا تکیه هزاره ها یواش یواش یواش یواش چیز شده و حالا بعد خواهیم دید بعد می که در دوران قهنگورسی بیدوند می‌گوید که اینها چند تا از دوسترازیش بند و درستم هست برای اینکه بشر تا یه سرپناهی در دشت برای خودش تهیره کرد، و تا یه وسیلهی برای دفاع از خودش مثل چوب دستی، سلاحی به دست نمی نمیتونست نمی تونست بیاد بیده مختلف تحتیش میکرد بنابراین مسائلی میخواست که بعد اول همون در پور بوده و این کارا این اینا همه همون ها جنبه محلی داشته هنوز به درشت نیامده میگه که به جوی یا به کشت آفرا راه کرد به فرکهی رنج کتاه کرد چراگاه مردم به دین برپسید صحبت زمینی که زراحت کنن و محصول بردارن بازی همونز نیست شراغ اح مردم بدین بر حضور فراهم در درود درود یعنی که روایتان یعنی درو چطا به پس هر کسی نان خيش بشناخت سامان خيش برنجید یعنی رنج برد معنی رنجیدن امروز رو نداره برنجید یعنی زحمت کشيد هر هم سامان خود شدونه سامان یعنی محل و منطقه این خود زمین شده به دان ایزدی جاه و فرق کیام ز نخجیر و بور و گوزنجیان جوزنج... جدا کرد از و خر و گوستند ورز آوری دانچه بستند از اینجا مسئله بعد در بعد با تفصیل بیشتری از البته من بعد این تفصیل می کردم این شاهنامه خالقی همون منتشر نشدید من بر طرف شاهنامه قبلی کردم و یا بعد هم دوباره این مسئله حیوانات و رانگ کردن حیوانات در مفصیل شود وقتی فکر رانگ کردن حیوانات می تمام حیوانات سنگ راه از درنده و چرنده و هم. درندگان شکالی و شکالی ارز کنه که بعدها در عمل متوجه میشه که بعضی از اینا رام نمیشن مثل, مثل گرگ و گراز بعضی دیگر رام میشن ولی فایده زیاد نداره و بیترینشون رو بشه از انتخاب از درندگان سید از اَفکای میقدیم یاره و فدار بشر با میمون از جا دام هرو گابو آسو و فاند و اس و و شطور و موزو ایواناتی تو پات بوده بودند از مرغان شکاری هم باز و شاهین و نرتر ترجیح که از موغان دانکار هم اونها که و باقی دیگر رو بلکر برن دنبال کارشون اما که فایده کمتری داشت رها کرد برن این ها این مسئله دقیقان می کنم به دان ایزدی جا و و گور و گوزن جیان جیان یعنی خشکین جدا کرد گا و مکر و به ورز آوریدان چه بود سوکمند برزیدن این کار کردن کردن استفاده کرد. به دیشان بگردید و زیشان چرید همین تاج را فیشتم پردارید هنوز قصده گوشت خوردن نیست داستان گوشت خوردن و در دوران زحایت مطرح میشه یعنی حتی دوران هستت ساله یا نهست ساله جمشید هم دوران گوشت خوردن نیست از یه زحایت بوده بلی که خوردن گوشت ولی این حیوانات از شیرشون، از پوستشون، از نواد نواد که می گرفتن یا آیستقاق اون خود نمی گوشت رو هم خام می خوردن. این در اساطیر دارن میگن صحبت خوردن گوشت نیست و به خصوص زحاک که ابلیس به عنوان خالیگر عنوان آشپز آمدن این از که ممکنه فکر بکنیم که در اون روزگاران بوزگاران تحمل رسول نا گوشت به صورت خام خورده میشده طالب به طرفداری نداشته ولی بعدها زه های کار رواج داده با ساختن خرافتای بچمس به هر حال به دیشان ببرزید چرید همین تاج را تاج را را ببینید برای از یعنی برای تاج خود را پردارد ز پویندگان یعنی جونوران هر چه مویش نکوست بکشت و به سرشان برآهیفت پوست برآهیفتن یعنی بیرنش یعنی پوستشون رو از کنده کند حاصل اینکه پوست فاس نکرد درست به لفتی برآهیفتن یعنی بیرنش تو روباه و قاقم تو سنجاق نرد چهارم سمور رفت کش موی اولین لباس هایی که نکوشیدن از پوست خیوانات کسی که موی گهر کشید خیلی چند نمیدونیم و آن صورتی که اگر میتونستیم بدونیم این بود که صدا زبط میشد از هزار سال پیش از هیستد سال پیش و می‌گیدیم چه جور تلفز می‌کردن اون وقت بیشتر میتونستیم می اینو درد کنیم حالا خیلی، اما بعضی کتاب‌های زبان شناسی چیزا نوشته شده مثلاً پرس کنیم که یک کتاب داره همزه‌ی اسفانی به نام ات تنبیه علا حدوث تسحیف کتاب عربیسی رسالیست نسخه‌ی هم در کتاب کنم از مردی بوده این کتاب خیلی چوهرد این آهای حمزه اسفانی مرد خیلی دقیق دقیقه معقوله بوده و کنچاوی زیادی کرده در باب در باب تلفظ حروف و توجه کرده این حروف در نواهی مختلف به صورت تلفز نمیشه مثلا فرضی در اسفان اینو گفته خودشم اسفانی در اسفان جیم علافظش ترکیبی است از گ و زی رو هست میشه ز ز در تهران تلفظش مرکب است از د و ژ میشه ج در مصر همین رو تلفظ می‌کنن گ یعنی جمال عبدالناصر رو مسیحی میگید جمال عبدالناصر حجاز میگه حجاز بنابراین اون اگه میوزه سیجار، میخونه سیگار ما میخونیم سیجار بعد مزقرهش هم میکنیم که آه اینا چه خرمی نه این قویل مسائل هست و اگه او یا همزه اشاره میکنه که دو جور تهم بود داشته که بعضیش به اون طرفات تای عربی مزدیکتر بوده که تیز بوده یکمی، اونو با تا نوشتن، بعضیاش نبوده که با ته نوشتن برحال به به دقت اطلاعاتی نداریم فقط یک قرائمی گوشش کنال دست ما میاد که میگنم چه اینقدی مسائل وجود داشته و از قدیم هم یه دقتایی می‌کردند اینجور نیستش که بخاطر دید بعضی از این دوبله فارسی‌ها به خصوص هر چیزی که گوش می‌نداد ساتا رو می‌کنه سین و تار می‌کنه ت و فکر که این فارسی شده باش. یه وقت یادم میفته تو رادیو گفتش که مانی بود گوینده بود بعد ما پنج و سه دقیقه میگفتش که هرچی رفتم و بگی رفت تو مستم میگی بگی میشه محلی اینکه <تصفح> از محلی ندرکتی؟ بیمانیه این ترزیم تار بردید روپن تپ بگی کنید شد پارسی؟ درست نیست چطور شده که توس با تا نوشتی شده ولی توران با تا نوشتی هیچوقت نشدی بیدلید که نیست از این قبیل مسائل بوده که به نظرم آقای همایی اون را یه هم شده یه مقداری از این مسائل در مقدمه لغتنامه ده خدا کنم که این مقدمه لغتنامه لابود نمیشنسید من گذره توضیح بتن کتابی هست بنامه لغتنامه ده خدایی که جل, جل ولی یک مجلل در روضه صفحه است که هنوز لغتنامه شروع نشکن عنوان مقدم است در این یه مجلد 3400 صفحه‌ای صفحه از بسیاری از پوزلای درجه اول کشور مقاله هایی که ارتباط داره با مسئله لغت و لغتنامه و لغت فارسی اونجور جمعهش شده چار مثلا، مرهوم سعید نفسی بقاله مفصل در را تشکیل فرهنگستان و اینکه چه عواملی موجب تو از دوری رضا شاه دلاخره فرهنگستان درسید میگه ادهی تو هر وزارتخونه این از این دوره فارسی ها پیده شدن خودشون برای خودتون کارهای میکردن بیشتایی میگفتن بعد این مال این وزارتخونه هم بود اینکه نمیخورد با هم بعد بودن میگه اون گفتا بیستواده میشه. که من رو گفته بود که عجب بعد صفاهتی میوزد بعد هم رفته بوده به شاه گفته بود و گفته بودی که خب چیکار کنیم پلان اینا این احساسات ملی بستن هم بوده ولی خب این شبورم میخواد روزشا خیلی خب احساست خالی که بعد گفته بود که قاعدتاً باید مرکزی تحسیس بشه که افراد تا سراییت اونجا باشن و این زیر نظر بگیرن و بعد دقیقت کنن کار کنن و بعد هم فرمان تشکیل فرنگستان رو دارم چه اولین هم بوسق و دوله محروب مرز بیکمار یا قبل برواید مرحوم بهمنیار اونجا یه مقاله مفصل داره در باره روش های املا. مرحوم جلال امامایی مقاله مفصل داره مرحوم دکتر موین راجعو زبان ها داره آقای دکتر یارشاتر یه مقاله راجعو زن زبان های ایرانی که من تو این بحثی در بای زبان های ایرانی مقاله سوزنم نوشتم که از مقالششون استفاده زیادی این همه در اون مقدمه لغتنامه است و اون مجلد مقدمه لغتنامه را اگر فرصت بکنید بسیاری مقاله های درجه اول و بسیار مهم حد کرد اسناد خیلی مهم زبان بارسی و میتونید مطالعه کنید خیلی بحره راید ازش یکی از اونه همین مثل را مطلب آقای را این مسائل اگر اگر. برم ارز که بر این گونه از چرم پورگندگان بپوشید بالای پورگندگان بالا یعنی قامت میدونید که رو بالا میدونید بالا بلند بشتگر سرز نازمن کتاب کرد به سه زبت دراز بالا بالا بلند یعنی قد بلند از مستر والیدن والیدن معنی رشد کردن و بزرگ شدن. مثل با الف مستری میشه بالا. مثل پهنا یعنی پهن‌گدا. مثل درازا یعنی درازی تو مثل گرما یعنی این که هر میگن، اینه همچنین بالا، یعنی پرس. یعنی نیزانی که روشت کرده بابا <تصفح> <تصفح> به گونه از چرم پویندگان بپوشید بالا یک پویندگان در چه بگم که در منطق میدونید که در تعریب انسان انسان حیوار بار ناطقه و در گفتن، این محسن در منطق توضیح زنید براتون بگم که اینجا سخن گفتن مراد سخن گفتن کی کاشف از فکر قبلی باشه من آوری نثقه توتی که متکی بر تقلیده و هیچ از معنی اون چه میگه اطلاعی نداره این رو نوت به حساب نمیاره. و اگر میگن انسان حیوان ناطقه یعنی انسان حیوان متفکر فکر میکنه راست. ولی بو یندگان این معنی. برنجی دو یعنی هم زحمت کشید گسترد و خرد و سپرد برفت و جز از نام نیفونه بود. دوباره همون بحث ارفانی شروع میشه تنش بسی رنج بردن در آن روزگار به افسون و اندیشه بیشمار. چو پیش آمدش روزگار بهی از او مردری من گاه نهی به منی ترس گاه بسیاری معانی داره بسیار معانی داره مفصلن یکیش تخت چون کس را همشه است برای گاه نو، همی خوان برای شاهن گاه به معنی آهنگ موسیقی در سه گاه و چار گاه و راست پنج گاه این گاه هم. گاه این گاه پسابند زمانه شان گاه، پسابند مکانی مثل ورزشگاه و باشگاه آن به من یه وقت این اما زمان ندادش درنگ شدان رنج بوشنگه، با بوشنگه، وقتی با وقتی رسید زمانه مهلتش نداد و حوچنگ و همه اون خوش و با همه سنگ و به قول سروش اصحانی بهت خیلی درجه افلیه گی یاد کن البرسلان را تا بدانی روز مرد سو ند حد پشمت البرسلانی داشت همانه زمانی ندادش درنگ شدان رنج حوچنگ و حوچ و سنگ اما سنگ سنگ از مستر سنجیدن، سنجیدن هم همونی کشیدن سنگینی یعنی چیزی که با کشیدن قابل تشکیل به همین دلیل هم هست که سنگ برام افتاده رو میگن سنگ به دلیل اینکه فقط سقطه یعنی تنها خاصیت که داریم این بزن در فقط بزنش مشخص ترین خصوصیت وزنه ترازو رو هم میگم سنگ در حالت فلیفزه حالت مثلا چیز دیگر. ولی میگن سنگ دلیش میگم یعنی باهاش میشه سنجید و سنگید یعنی چیزی که در سنجش وز میداره خود سنجیدن و هم همون سنگیدنه چون جه و گ به هم بدل میشه گفتم قبلا سنگ و سنج یکی چو دان رنجو چنگه واهو چو سنگ یعنی وزم زمانه زمانی ولی پیپی نپیوست تا جهان با تو مه من نیز آشکارا نماید چه میگه نه هرگز جهان دنیا با نه تو مه خواهد ورزی نه مسئولش بتونی پسر بود مر او را، حوشنگ را، یکی روشنگ، گران ماغلت هم، روست دیگه بند بیا آمد به تخت پدر برمیشه کمر برمیان رسم او را بگند کمر، به اون که حالا بشه این کمربند، این یاد که میشه، کمر بگه کن کمربند، دوخات طالب، کمر، این این اون که حالا بشه این کمر، کمرم در درز میکنه، اون میانید شوخ چه بندی به میانن در پنج حافظ میگه که یا نداوری و دارم عجب که هر ساعت میان مجمع خوبان کنیم میان داری. نبندی زان میان ترفی کمروار اگر خود را ببینید در میان کمر یعنی کمربنده و این از لوازم پادشاهی بود پلاه کمر مثل, مثل نگین و چوب دستی هر دوش از لوازمی باز برکنه برمیان رسم او را به همه موبدان رازلش کرده بخوام به چربی چماویه ها بران من تمروز تخت و کلاه مرازیبد و تاج و گند و سپاه جهان از بدیها بشویمم به رای پسان جست کنم در کی گرد فاست در هر جای تخت کنم دست دید که من بود خواهم جهان را خدید هر آن چیز در جهان سوف من سوف من آشکارا موبدان، موبد یعنی روحانی دیمه زرده شده علمه در افت بوده معوپت پت که در عوستایی پاییتی یعنی سید و سالار و سروره معوپت یعنی رئیس موبان و این پت به صورت بعد در ستحبت یعنی رئیس سپان در موبت یعنی رئیس مغان در هیربت یعنی رئیس آتش در کهبد یعنی رئیس خزانه و امثال اینا همه آمین و آخر سرها عادت کردن که این بد بخونن که با اون یکی بد اشتباه اینه خیلی موسک روز مثل اینکه مثلا شیر درندر در بخونن شعیر برای اینکه با اون چیزا کراکی اشتغان می کنن موودان رازلش کرد خواست در حیرت موبدان محصول های ایدئولوژیکی چه پا بودند <تصفح> <مجدد. تصفح> <بس. تصفح> همه موبدان رازلش کرد بخواهم به چربی چه ماهویه سخون چرب سخن چرب زبان یعنی خوش زبان برای اینکه قضای چربونه رو راحت از دلو حالا چربی طرفتار نداره یه مزاری سیاش گردن اونزی داره انده ولی یه قدید این چربونه خیلی خوشنزه بوده، و خیلی چیز بود چرب سخن و چرب زبانی و چرب سخنی و چرب دست به معنی ماهر در کارها و بعد چرب کشیدن در ترازو من <تص> این چیز به نفر قریدار تفقه رو و سنگین کردن و چربی مفهومه خیلی خوب داشت به چربی چمایه صفنها را چنین گفت که امروز تخت و کلا مرا رو ری بد و پاچ و, و جهان از بدی ها بشویدن به رای پسان گه کنن در کی گرد پای پای گرد کردن یعنی چار زانو نشستن پا گرد کردن، این چارز در مقابل پاد دراز کردن این پا دراز کردنه چارزانو هم پا گرد کردن. و معمولا در مقامی که آدم میخواد جا بیفته چارزانو میشونه این جایی که دیگه جای شد و میخواد بیرپلیشن هموندی بلند نشه اونجا چارزانو میشونه اینه که میگه که اول به رای و تدبیر دنیا را از بدیها ها میشویم بعد در پادشاهی ها گرد میکنن به این جهان از بدیها ها بشویم به رای پس ها گه کنم در کهی گرد پا زهر جاز کفته کنم دست دیم که من بود خواهم جهان را پدیم بود خواهم یعنی خواهم بود. ای با قصه دعوه و احورا و اینا رو که به تفصیل عرض دارم اینجا همه هنوز بیوان دشمن تحملیس هم بند او بند. و اونی دوید که تحمورس هم تحمورسی بیدبنده بردید که تحمورسی بیدبند و تالا هم حسابی خدمت دیوان نرسیده هم به بعد بیرسید که هر جا کوتر کنند دست که من بود خواهم جهان را خلید هم چیز که در جهان سود من کنم آشکارا بو حالا می‌بینید که اینکه که از که از ابتدای زندگی حالا میگه که ریسیدن و پشت بشتن و پاشفافتن این حرفا رو اینجا در توریه که نمورس شده, شده پس از پشت میشو بره پشت برید و به رشتن نهادن به کوچش از اون کرد پوچش به به گستردنی بود همو رهنما وقتی بافتن هم میشه پوشیدنی باشه هم گستردنی بیگه. خشنتر و پروختر اونا من میتوند زیر پا زیر پویندگان هر که بود نیکرو خورش کردشان سبزه و کاه و جو رمنده ددان را همه بنگرید گفتم ددان حیوان در رنگه گوش و یوز از میان بعد سیه گوش یوز غیر از یوز پلنگ ها یوز پلنگ نوعی پلنگ کوچکه. ولی یوز یه نوع حیوان بوده که آشق پنیر اولا خیلی سرورت هم میشه احلی میشه تا حیبون دریجه یکی برای اردن شکار با شکار میکرم هم نوعی یوزه میگه از ددان وقتی گشت از همه راق شوتر و بیشتر به درد بشر بخور سیاه و یوزه برای که اینا به وسیل اینا اینا میتونه برای شکار و از چابکی و چالاکی هم استفاده بکنه ایمانگیره پیکر بنابراین به چاره بیا وردش از دشت و کو و این تحصیم گرفت سیاه گوش و گوز به چاره چاره این تدبیر پیله تدبیر به چاره بیا وردش از دست و دشت و کو به بند آمدند آن دور از گروه میگه نار آوردن یه جو حالا سه میکانیسمشم حالا بعد میگه میرسیم میدیمیم این بوده که اینو و نگه می داشتن و این کم کم اهلی می شود بعد حضیتش می کردن از در, در, در که بعد مرغان هم ها کار کردن زده مرغان همان را که بود نیکساز چو بازو چو شاه می گردن فراز. یا ورد و آموختنشان گرفت گرفتن معنی شروع کردن یکی پلانکست پرسیدن گرفت این شروع که پرسید خاندن گره بیاورد آموخ تنشان گره جهانی به دو مانده اندشه گره اشاره به ترگیت به حکانات مختلف و رام کردن چون این کرده شد ماکیان و خروس کجا بر شد گه زخم کروس بیاورد و یک سر به مردم کشید نهفته همه سودمندی بود. از میون قرندگان دانخار از خنه نزدیکتر با بشر که اهلی شد تهنوز هم و الحمدلله کمال لطفا بشر بهش کرده حالا که ماشالله پیوز دارش که ماشین جوجه و تو اون قفص اصلا سرش نمیتونه بلند کنید سر گیرن و اینکه رسید بزنشون جایی که دیگه دیگه اگه بیشتر بزید سرخه یک تایی نداره، همونجا بتونه اینکه بطبخ اصلا خروسش بتونه یه بار خونده باشه یا مار رو بتونه یه بار توخ کرده باشه، انزیمه در سپرمارکت بسند کنید. ارز کنند، خیلی لطف کرد، ماکیان خروس رو از میونه انتخاب کرد، و سایه رحمتش رو به سر اونا افتاد. این کرده شد ماکیان و خروز کجا برکشد در خروف شد گهه زخم یعنی ضربه بیاورد و یک سر به مردم کشید نهفته همه مندی گزید خیلی لطف هم کرده بفرمود تاشان نوازن گرد نه جز به آوای نر اتداش میکنم بیا نزبونشون داریم تا چاپشن دوید دیگه که نجیب محفوظ هست نویسنده ای که نوبل گرفت یک کتاب داره که دوران زندگی خود رو بحث کرده درش رو من رفتن فرانسه رفتم فرانسی درشتیدم و آدودم من اونو خونه ما بزرگ بود و فدرش تاجلی بود و حجرهی داشته و فساسی داشته و عرصمان چند تا پسر داشته و کم دختر داشته مادر بود و مادر خونه درندشتی رو اداره میکرده و نا وقت این مادر من چ همونه یه مهربانی و چیز بود و چه قد رو و دلش برای مردم و دلرهیم بود و چه بود و چه بود و چه بود, و چه, بود و چه بود الاخر بعد میگه که برای ظهر اینا هست که میومد این چه شد نمازش میکرد چه میکرد نا فقط بعد که هر روزی بعد اون دوتایی که قرار بود دیره بخصی میگرف خیلی با دلسوزی میگفتش که چالا اون چیز به این ضربه ای که من بهت میزنم بهت بشیم و سرشون میبورید و روزش با ارز کنم که بیا و بفرمون تاشون نوازن کرد نخوانندشون جز با آقای نرم چون این گفت که این را نمایش کنید جهان آنفرین را ستایش کنید که او داد من بر دده دستگاه ستایش مرو را تو بنده. پیگه خدا رو کنیم که بپرش تا برغمه رو من نظمون مسخرات رو نهبه همه همه حیوانات و چیزها رو همه رو در اختیار بشر کنیم در درستگاه درستگاه رو همین قدرتی بر ما رو درستگاه, درستگاه, درستگاه داد یعنی بر حیوانات بشری ما رو قوانا و پیروز اینجا نکته بسیار مهم اینست که من یه خاطره جالبم دارم در که خروس در ایران باستان هیگون مقدس ماهی مهمه بوده از خروس سپید چهی تاچه در احادیث هم بسیار مفصل صحبت شده که چقدر خوبه که خروس سپید داشته باشند بعد این خروس گفتن که موقع نماز خوب میشه که خروصیستر عرش تو بانک میکنه و بانک اون خروص و خروصهای زمین هم میشنون نام هم بانک برمیدارن و مردم رو ایدار میکنن برای نماز و برای روزه و برای سایر مسائل ارز کنن که و این رو از امام جعفر ساده و این ها چیز کردن رباید کنن خیلی بویا یا شیعه و و همه این ربایت رایج همه قبول یه روز مردم فرزا بود خدا رو کنه تشباه سر کلاس، در دوری دکتری، ایشون عوسته‌هایی در, در عرصی ببیندن تشباه آوردن و پشتشون کردن تخت و تخت سعر سعر تخت رو تخته و تخته هم تا سر اتاق همین متر شروع کردن به عوسته‌هایی، اونتون نوشتن، همینجور نوشتن. نوشتن، نوشتن، نوشتن، یه, تا یه خط تا یه خط یه خط یه خط، این نوشتن و ما هم دوره دکتوری بود دیگه بیمذکیه بچه مدسه اونه که نه بود ما اینو این کرد کوپی کردیم کوپی کردیم اون تهمون شد مثلا نصف وقت نم. پنجا دیگر مثلا سرش این کار شد از تهم اون نوست دو ساعت ساعت ساعت درست چلو پنج و پنجا بود دو ساعت در هم این شد ساعت بعد هم به دونه دونه کلمات رو خوندن رو بعد معنی کردن خلاصه معنی این این یه عبارتی بوده از وندیداد در فضیلت خروز خروز استفیلی چه اتراج این همون مطلبی که هر مسلمانی بدون استثناء از قول آن جعفر صادق و ناشنگه بود که خرموده بودن این مسائل رو از روی ونگیدانیوان رو معنی کرد گذاشت رفت بدونی که یه کلمه بگیی که این بودی شما جایی دیدین ندیدیم هیچ، هیچ، انگاه حتی این رو جاییدان نوشت و تو، بعدم ترجمه کرد و معنی کرد که این خروس اونجور رو در آسمان هست و همه حتی که زدن این تو هست و معنی کرد و ساعت تمشی بودش کرد و تو البته همه بچه ها پیغامو گرفتن طبیعیست شاید هم وضعی نگلشم ولی در حافی حالی کنم که این خروس اینا که میگه بهشون موازش مکنم و عزت ایتران بهشون یه مزارش هم برای اینجا یک قاستان میاد که نسبتا در این قیل و دقت نکنه منشون نمیترم خودمان تا مدتها منشون نمیترم مرموع را یکی پاک دستور رای از دکردار بعد دو دستور نانی وزیره که دست نوزاره همه بسید خونیده به هر جای و شهره است. نام خونیده یعنی مبارک و خوجهده و مورد احترام و مورد خونیده به هر جای و شهره است. نام نزد جز به نیکی به هر جای گان آدم خوری رو میگرد تنگیز روز بسته ز خوردن دلپ به پیش جهاندار بعد پاک شب روزا روزه داشت شب رو هم به طاعت و عبادت من نمیدونم که این مطلب رو اینم همونیست که در خدای نامک بوده یا اینکه فردوسی یه تمثیلی، یه وضعی از آبدان روزگار خودش رو میگه در اینکه اینا کسی که روز رو روزه باشه و شب هم قان و باشه و به طاعت و عبادت بگذار نه این قاعدتاً عبادت اسلامی ولی حالی به هرچت محصول شدید که آدم خوبی بود آدم حابه بزاهزی بود چون جان بر دل هر بود بود نماز شب و روزه آینه بود اختر مایه بود اختر شاه را اختر مایه بود اختر شاه را در بند جان برقاه را اختر یه معنیش گرفش و علم تنها کلمه‌ی که معنیش عوضیه پرچنه که حالا بیش از همه رفعه پرچم به معنی اون منگولت دوم نوعی گاه کوهی بود سیاهنگ که این برای مبارکی چشل منگولت آویزون میکردن به جلوی نیزه روی علم او اسمش پرچم حافظ میگه ظلف خاتون زفر شیفته پرچم تو پرچم باید ظلف داشته باشه اگه این حرفت هم سروش اسفانی دور ناصر این شا میگه از اثر فتح میر باد سمرقند رایت شهرها و گیر به پرچم یعنی باد سمرقند در اثر فتح امیر به پرچم علم شاه میخوری یعنی علم خودش یه پرچم داشتی پرچم جزی از عایزای علم او اون روشون میگه پرچم ولی اسمای درست این وسیله لشکت کشی و نشانگی، نشانه گذاشتن رایت اختر درفش علم و لبا اینا در امان درست این من خیال میکنم که سر ماهی بود اختر شاهرا اختر جبنی ستاره و ستاره تاله اونا نباشه بو اینجور رو هم میشه گره یعنی ماهی خوشبخت پاچه ولی من خیال می‌کنم که علم و رعایت شاه چون قدرت او پستا وقتی اتراشته هست سرمایه قدرت شاه در بند و جان بدخواه را بر اچ بزرگترین خطر هم برای بدخواهان وجود این وضعی همه راه نیکی نمودی شاه نمودی یعنی نشون دادی نشون می‌داد راه نیکی رو شام نشون بیاد همه راستی خواستی پایدا این تبدیل می که همهش از راه راست خواهد شامده چنان شاه حالودی اینجاست که سخت داده بودم به بچه ها حقیقت نواد درستشون غلط نمی من با این که من معنی کردم. در ایکی راست درستانشون شا. چنان شاه حالودی گشت از بدی به تابید از اون فرده ایزدی برفت من را به افسون ببند چون برتیز رو بارگی برمشن زمان تا زمان زینش برساختی همین گردگیتیش برپار این سویت مشکل میگه وقتی که شاه این از بدیها تصدیر پاروده کالایش این تسکیه پاروده وقتی که شاه از بدی پاروده شد تسکیه شد و فره ایزدی از این کافت اون وقت وزیر یا خود تحموده مهم نیست هر کدونشون باشه، برفت سهرمند را به افسون ببن اینجا یک نطقه خیلی مهم هست خب این هست که چند که ملاحظه می یه افصوم اهورایی داریم که از ها مکهرنی در تر ایدون با ها یعنی بسیاری از پادشه ها بودن که با عالم ماورا و طبیعه و داشتن و طبعا احورایی بودن و پرهی ایزدی داشتن نمی نمیتونست ارتباط ماورا و ارتباط جادویی و احریمنی اینجا میگه شام یا وزیرش رفتن و احریمنی و افصوم احریمن که با افسون احریمنی کنه نمیشه باز کشید. احریمن رو به افسون احورایی برده برفت احریمن را به افسون ببست ببست اینجا جنی یعنی متیش کنه چو بر تیز رو بارگی بردشن بارگی یعنی هست اون یعنی اصف در میگه که رفت احریمن رو متی کرد مثل عصد سوارش شد بعد اینکه زینم، زین پشتش گذاشت سوارش شد و دور دنیا میتازونده شد این داستان یعنی وزیر یا احیانا خود تهموره است احتمالا خود تهموره است رفت دیو، و بعد اینکه پره پر ایزد تا رفت و دیب و به دست و آورد و زین گذاشت به پشت دیب و سوارش شد بچه ها همه <تصفح> به دیگر که فارد رو گشت از وزیر یعنی بعد احریمن او رو به افصان و بعد شاه یا وزیر سوار سوار عصد شد گشت دست رو فرد شد اینه که خود تهموره رسیب رو گرفت این رو به پشتش و دور دنیا تازون بشت چه دیوان به دیدن که داره شورش کردن رو دیدن دیوان بدیدن کرداره او کشیدن گردن به گفتاره گردن کشی یعنی تاکشتی رو تا فرمانه بستر بودم شید، بهتابی، فرمانه فرمانه این نور دیگه، اون تعیید فرمانه، فرمانه تشمیه به اون حاله است که دور سر معصومین و دور سر دور سر مقدسین عدیان مختلف، حتی در دین ایسا هم ها هستند. این نوری که دور سرش دارد، اونو میگن فرمانه تابیدن تابش؟ نه نه تابیدن نور تابیدن نور چلا فکر میکنه ممکن معنی برگشتن بریم بله. همین اشتباهی <تباری> کرده دوستان دوستان همین اشتباهی کرده <تباری> دوستان <سر> از <اونا>. <تباری> <تباری> <تباری> <تباری> <تباری> خب راست زیر سر اونا هست اگه نگفته بودیم هیچ به هر حال ارز کنم که چو دیوان بدیدم کردار اون کشیدم گردندی گفتار اون شدن و انجومن بسیار مر که پردخت مانند از او تا جفتن بسیار مر این کلمه مر همونیست که در کلمه شمار و آمار آمار صمار بهلام میشه صمار صمار به ستونشان بله یعنی که داد آمار هم هم بسیار مرد یعنی بسیار دیوان شماره زیادی از دیوان شدن منجومان دی بسیار مر یعنی عده بسیاری از دیوان جمع شدن که پرداخت مانند از اون تاج و فرد برای که تاج و فر رو از اون جدا دارد چون تهمور ساگه شد از کارشان برا شد و بشکست بازار. به فر جهاندار بستش میان بگردن براور به گران که از قدیم ترین صلاح هایی که ممکن بوده وجود داشته بشید گرزی که چی توخواه و یه سنگ کماغ بوده بسری طرف به فر جهاندار وزدش میان به گرزن در آورد گرزگران همه نردیوان افسونگران معمولاً صفت محصول در پارتی متاوته نمی کنه نردیوان افسونگر میگه معموله میگه مرد خوب مردان خوب همین مردان خوبان ولی گاهی به این ترتیب میان همه نردیوان و افزنگران برفتن جادو سفاگران دمند سیهدی